بالله من بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله میراد العالمین و صل الله علیه سیدنا رسول الله و آل طیبین و قاهرین معصومین اللہ تو دارمت و علا اعداد اللہ محشن و جمعیل مختلفین و الحمد و رحمت که و رحمت و هر دورمی که بود در اختلاف اضافه و ما شدیم ما بعضی این کروه روی مداری بیش از مقدار مقارقی صحبت میکنیم چون مثلا ممکنه در کلی بحث دو ماست ما یکی این کروه باب اخلاف پیش که در قدابت ما از این رو کاملا میشیابی میکنیم که در مسائل دیگر حباب دیگر همیشالله کارایی داشته باشه بحث فره اما این بود که شخص ادعا میکنه که این پولی رو که ایجاد قاضی با ارمان بوده یا اجره فاصله بوده اجاره فاصله بوده طبعا من تو کلام، حالا او چیزی ظاهرا که کلام الهی مناسبت رو چی چه در اجاره تملیک منافع یعنی در اینجا مراد از اجاره اینجا اجاره اشخاص نه اجاره اعیان ما چون اجاره اصطلاحا دو تا داریم یکی اجاره اشخاص داریم یکی که پول میدیم به خیاض و اصلا لوازم جزء خاصی لوازم یه اجاره احیان داریم اجاره احیان مثل این که خانه بکرد در ندیجه شیه اما در اینجه شما پول رو میگیم شما میگیم یعنی قرار زمینه که منافع پول مراد نیست پول رو داریم به قاضی که قاضی برای شما قضاوت بکنه و فرض کنیم این اجرت حرام یا با قاضی معامله کردیم که به نفع شما حکم بکنیم و بهش پول بدیم مثلا گفته اگر این قدر پول بدی اینجوری گفت بکنی اینقدر این, این پول بدی اونطوری مثلا هرچی بیشتر مثلا محکمتر شد که این نهره اجارهی خاصله اجاره حرام لیکن پول رو یا ماشین رو به قاضی دادی، قاضی هم ادعا میکنه به نهره هدیه بودیم در این سنخه از مسائل همبلا قبل از این که وارد بحش باشیم اصولاً در باب قضاوت هر بر جهل قضاوت. حرض بر این است که ما نمی‌دانیم، چیزی رو خبر ندانیم و اون کسی که می خواهد عذابت کنه نسبتش با طرفین این علا حد انسواه یعنی نه رشده رو می‌دونه، نه هدیه رو می‌دونه. و به طور من چرا هر سرم راه هایی که ما داریم در فر چه در شما محکنگیه چه در ثبات مرتوعیه اصولاً به این تردیبه در طریق اول اون برخورد علمی یا واقعی یا ادراکی باشه چون اصلا ما میدونیم این نجس این پاک این من کلمه که نیست این خوبصورت میدونیم مفاد این یعنی راهی رو که اینها میدونیم یا به اصطلاح هایون مثل ترس میدونن یا مثل امارات و هجج و ترق حالا گاهی میگن امارات و ترق رو برای موضوعات روی این رو برای احکام بگیم اصطلاح و اون چه که شما رو به واقع میرسونه از اون تحبیره به اماره میکنیم تحبیره به طریق میکنیم تحبیره به مثلا حجت میکنیم و اما اون چیه که موردگه هم بر ما هست و اون اینکه که ما واقع رو نمیرسیم مجبوله بر این واقع اینه دقت بکنیم اگر در ظرف جنج بیاد بر شما کار بکنه اینجا باید ابداع بکنه چون محروض اینه که به واقع نرسیدی در اولی ابداع نمیخواد چون شما به واقع رسیم به هر درجه ای که رسیم اما اینجا ابداع میخواد این ابداع اسمش تعبده اسمش تنزیره لذای اصطلاحی و بنده به کار که کسی یه نگفیه از اصطلاح خودم مفاد امارات و مفاد معقول اولی به اصطلاح و اصولی گذاشتیم مثل معقول اولی و سانهی و سانهی و سانهی خلاسفه معقول اولی مفاد امارات معده همه همه و مجرای اصل اصل مفاد حساب معقول سانویست به اصطلاح اصولی محیار در اصلا همینه اصولاً اصولا اینجوری قرار داده میشه شما واقع رو نمیدونید میاد با فرض جهل شما به واقع کاری رو از اون قرار میده این اصولی میشه اصلا یعنی فرض اولی اینه و نظام هم ارض کردید هر جا آمد حکمی این در مقام سبور در مقام اصبات هر جا حکمی مغیاب علم و جهد شد این مفاد اصلی اون قاعده کلی کلوشی این لکه نظیف حتی تعلم انهو قدر این اصل چون علم کل کلوشی این لکه حلال حتی تعلم انهو حرام گفت حتی تعلم تا علم آمن به اصل ظاهریست چون اصولا به طور کلی اینه تمام قواعد زادلی محدودن به جن به علم بخلاف محدود هستند حدشون رو تا علم احمد دیگه جای نیز نیست جای اون تا اینه و لذا خوب دقت بکنید ما برای اینکه مثلا بعضی اولا گفتن کل چیزی حلال ناجزه است به حلیت واقعی حالا ممکن این مطلب جواب در بحث کل چیزی انکه حلال غیر ذهنوارشون باشه تو کفایت اشاره داره بعضی گفتن حکم ظاهری، بعضی‌هاشون واقعی، بعضی‌هاشون استصحاب، بعضی‌هام دو تا رو گفتن، دو تای اول دوم و دوم، از دوم و اول و سوم، بعضی‌هام هر سه رو گفتن، مجموعاً هفت تا احتمال دادن. کل چیزا که حلال رو هفت تا احتمال این ترتیب داده شده. از کردیم نو سی فنی رو باز هر جا غایت علم آمد فقط حکم ظاهری است. چون هی حکم واقعی نمیشه مغایره به علم بشه، تصیید باشه یا هر جا قاید واقع آمد شبهه واقعی این ضابطه و قاعده کلی اگر گفت کل شیء لکه حلال حتی تعلن شبهه زاری اما اگر این روایت رو فعلا در کتب ما فعلاً پیدا نکردیم در صورتی هم نه بود منحصراً مرحوم شیخ صدوق مرسلن آورده تو که اینو قطعاً مصداقی داشته فعلاً در ما نرسیده منحصر به ایشانه کل شیء مطلق حتی يرد به نهی گفت ببینید منم حتی حالا مثلا اذه از, از علما کله چیز مطلق حتی يرد به نهیون در باب برایت روزن روشن تو درست حرف این استدلال غلطه این, این معیارها رو که گفتید باشه میگم روشن جو چون ورود نهی امر واقعی است اگر امر واقعی شد مراد از کله چیز مطلق واقعا این یعنی در واقع همه چیز حلال مگر شاره حرام کنه ببینید مگر شاره حرام بکنه اما اگر گفت کل و شاین حلال حتی تعلم انه این امر ظاهریه این واقعی نیست لذا این دو تا دلیل کاملا با هم فرق میکنن کل و شاین مطلق حتی اردفیه نریون به باب براءت نمیکنه چرا چون شما در باب براءت میگین در ظرف جهل به واقع شاره گفته مباحه برای شما این مال ظرف جهل به واقع کل کلوشه این کلو مطلق حتی یه رو به دیه نهیم این نید ورده اشاره بیاد یعنی هر چیزی مباهه حلاله تا شاره نمی بکنه. اگر لسان قطع این فنی لسان اینه که اون غایت تأثیر داره در فعن و کل کلوشه این لکه حلال حتا تعلم انه حرامون بینه این حرامون بینه چون به علم خورده لذا این که اینا اومدن گفتن مثلا ازش اباحه واقعی در میاد گفتن نه اباحه ظاهری گفتن اباحه واقعی و ظاهری اباحه واقعی و ظاهری رو میگن اینا حرفای بی اساسیه هر جا حکمی در رسالهش مغیار شد به علم به خلاف قطعاً اثر داره این به صورت کلی قواعد کلی وقت در از اصل هم از کردم من کرارم بازم این از اصطلاحات بنده است محاد امارات معدای امارات این چون واقعه تعامل شما با امارات تعامل با حد واقعه تعامل شما با حصول تلا... تعامل با حدل اینه این دوتا رو فرم بگذاری یه دفعه شما تعامل با حدل واقع دارید یه لفه تعامل با حد علم میدارید اصلا معیار کلی و اصول اینه هر جا شما با اون صور نفس ادراتات ذهنی خودتون تعامل کردین معناش اصلی هر جا شما با واقع تعامل کردین معناش اماره است. مثلا زی گروز زنده بود امروز شک میکنید میگید اصطحاب بودیم میگید اصطحاب این اصطحاب رو خوب تعامل بکنید تعامل با اون صورت ذهنی یعنی اون صورتی که دیروز از ذهن اون صورت تو ذهن زنده بکنید یه صورت جوشه هست حالا ممکنی دیشب سکته کرده خب امکان داره اما اگر فرض کردید یه کسی از دوستان آمد با, با من الان پیش ذهن بودم ذهن اینجور گفت اینجا تعامل شما با حد واقعی میشه هماره این تا رو با هم که فهم ببینید کسی به شما بگه زیده الان زنده است. این یک حالته دیروز زید زنده بود این یک حالت دیگه این یک نکات کلی است که در باب اصول دائما در نظر بگیرید خیلی این مسئله مسئله مهم نیست که در باب اصول تعامل شما با حد دل علم شماست. هست حالی که اگه زیده باشه در کتاب اوروه چند جای اوروه؟ خطامون غیر خطام داره یه درس فرو علم اجمالی رو داره که معروفه بین به بحث علمی و دهیر در قربه اون فرو علم اجمالی و مواحث استثاثال و اصول عملیه کلن با این نقطه حل میشه اون حضرش اینه شما هر جا که بخوایید حضره اجرا بکنید اول ببینید چی دارید در ذهن تون چون محبوظ نیست که شما به واقع درستیدید این واقع رفته کاره اون صبر ذهنی ذهنیتون رو نگاه بکنید بعد ببینید چی می‌خواید این همون بحث معروفه گفتن اصل مصلحت حجت نیست و چی می‌خواید مثلا شما در باب استصحاب چی دارید چی می‌خواید و این نکته هم خیلی مهمه که در باب اصول هم این که چه نتیجه گیری می‌خواید بکنید و همین این که چیجوری نفیجی بکنه چون ما عقیده که اصول اساسا اغلالیه شارع تصرف میکنه توشون پس ما باید قبل از ما الان اصول رو با اما یک عمر تعبودی مبهن قبول میکنیم نه ابحامی هم نداره یک عمر اغلالیست اغلا در زندگیشون دارن ما هم جز اونا هستیم ما هم داریم شارع در اده از موارد تصرف کرده پس ما باید طبیعتاً با قطع نظر از موارد تعبد و شاره در حصول خودمون دقت بکنیم و خودمون ادراک نفسانی بکنیم خودمون بفهمیم که حصول رو چجور ورزه میکنیم چه کار میکنیم ما توی حصول چه راههایی رو وارد میشیم و چه قدیجه ای رو میگیریم مثلا کنید زد گیروز زنده بود امروز شک میکنیم اون چه که الان ما داریم یک صورت از زد داریم؟ حالا با قول بعضی از مقاعدت روان شده اون صورت اون که در گذشته زمان ضعیف بشه شما با استثاب اون صورت زنده نگه میده خب این مقای استثاب میشه این رو تفسیر بکنین یقین به حدوث رو توسعه میدین نفس توسعه میده واقعی نیدیم تنظیر اعتباری، احلاعی نفسه توسعه میدین تو مرحله بقا میشه این تذاور اما شما توی چی چکار میکنی توی احتیاط تو اختیار شما توصیه‌ای نمی‌دید؟ یک قطره خون دیدین تو یکی از این دو انا افتاد شما چه کار می‌کنید؟ نمی‌دیدین این قطره تو این انا هم افتاده تو اون انا هم افتاده. خوب دقت می‌کنید؟ شما اون چی که نفس شما میتونه ابداع بکنه، بگه از این هم اشتناب کن از اون هم اشتناب کن. چقدر فکر با اون یکی؟ اونجا شما ذیل رو می‌بینید، ذله می‌بینید، اینجا نمی‌بینید این انا تو خون میگید اجتناب کن لذا اون شبهه معروف که اگر علم اجمالی پیدا کردیم بعد لباس ما با یکی با یکی برخورد کرد اجتناب نجس هست و نمیگم نه نجیس نیست خب میگه شما میگه از هر دو اجتناب کن بله ما نگهتیم هر دو نجیسه گفتیم از هر دو اجتناب کن اصل عملی این مقدار بر ما درست کرد از هر دو اجتناب کن لذا خوب دقیق بفرمایید ما این نکات رو که روانا از اینکه الان مناسبت پیش آمد و نکته دیگه میگم این توضیح این مجبور شد میگاره این توضیح کامل بشه نکته دیگه اینه که مرحوم شیخ و در باب اصول نکته سوم تمام اصول چون جنبه ادعا داره جنبه واقعیت نداره در تمام اصول لحاظ باشه این چه من عرض می‌کنم چون مرحوم شیخ در اول رساله فرمودن اعلمندن مکلب کلان و شفت ام و انگلا هست و فی الهال از سابقه به ذهن آلون آمده ایشون چهارت اصل که جاری کردن لحاظ رو فقط که استصحاب او بردن که انما در احتیاط یا براعت یا تخیر دیگه لحاظ نیست ما ارز کردیم اینطور نیست در تمام اصول لحاظ هست چرا تو این تو امارات لحاظ نیست چرا این وقتی چیزی واقعی میشود که لحاظ معنی نداره. قوام و اصول به لحاظه این نقطه قوام و اصول به خیلی کارگوش در عباب اصول یعنی شما اگر یک لحاظ کردید یک نتیجه میگیرید. همون مطلب رو جور دیگه لحاظ کردید نتیجه دیگه میگیرید. یه مثالیست که چند بار تکرار کردم و واقعیت هم داره این نه اینجال باره تکرار ببینید شما یه گوشتی بر بازار خریدین عوردین تو خونه الان شک میکنین که این مثلا مطرف بکنین نکنین مذکارتانه از, از امام میپرسین خب امام سه جور ممکنه جواب به شما بدن یک امام ممکنه از تو تو کشتارگاه بودید بینید چطور کشته شده این کلام رو وقتی دست به قول معروف تحلیل اصولی بدین تحلیل علمی بدین امام میخواد اصال را در عدم رو جاری بکنه. شون حیوان قبل از خوش که مذکره اون یقین نداره تا واقع واقعیشو بفهمه در حقیقت وقتی اثرات علم ترکیع برن اصول محرزه هست. یک و استصحاب حاجی جزء استصحاب و معناش اینه که توی با این حیوان معامله غیر مذکاه بکنی جواب دوم امام اصلا ممکنه خوب دقت به کشتارگاه کاری نداره بیفرسن میگه تو از دست مسلمان نگرفتی یا از دست مسلمان نگرفت من اینجا نکته بحثم اینه هر اینکه لحاظ عوض شد حقیقت اصلا عوض میشه آیا نمید دروز ها خوندیم مرمومش عبارت مرموم آیه دیروانی اینا میگرد ننستالشون حکومتش ما گفت نستالشون حدوده تخصیصه این نقطه شمینه امام وقتی میاد کشتانگاه رو نگاه نمیکنه کنه خب جبت میاد اون حالتی که شما از قصاب گرفتی میگه از قصاب مسلمان میگه نگرفتی این معنیش چیه؟ معنیش که امام میفرمان چون از دست مسلمان گرفتی مزکاست آثار مزکا میشه و این دلیگه شلاق اون اصله آقالان اون اصولیه ها که خوندیم مثل مرحوم شیف، مرحوم استاد نسبت این قاعده سوق مسلم رو با اون استثابت حکومت گرفتن ما به نظر اون نه چون قیمان اصول به لحاظه این اصلا اصل دیگریه اون یک اصل این اصل دیگریه تا لحاظ عوض شد اصلا عوض میشه دو تا لحاظه دو تا لحاظ دو تا اصله نباید بین این ها نسبت مراقب بکنیم مرحوم آقای این نسبتش رو حکومت گرفته بعض از آقایون تخصیص گرفتن بعض از آقایون ورود گرفتن به نظر ما هیچ کلون نیست نبوزم دکاره کرد، بنا؟ نه ندارم نه چون دو لحاظه دو لحاظه و خبصه چون ابداع واقع نیست امور واقعی لحاظ عوضش نمی کنه. چند بار عرض کردم اینجا ابداعه انتظا نیست انتظا عوض نمی کنه. اما ابداع عوض نمی کن. این فرق اصاسیه مثلا بنده الان اینجا نشستم روی زمین هستم زیر سقف هستم راست نه نه از چپ اینا این انتظارات عوض نمی کنه یه یک پیام نمیشه با انتظارات انسان ارزش نمی با انتظارات تعدد نمیاد اما با ابداعات تعدد میاد هر این نه انتظار هر ایده از یک جهت با هم شریکن اما در ابداع اضافه میکنین در انتظار نیست فقط دو چیز رو ناد نظر میکنید مثلا خودم رو با سخت میگم میرسه خودم رو با اون میگم راستمون خودم رو با یه چیزی میگم چط فلان دیوار من این تعدد انتظار تعدد واقع نمیاره یکی از مناشئ اشتباهات یعنی تصور ما که اون جا کردن این انتظار رو با ابداع یکی گرفتن همین کلام به ذهن شماست میگینه اگر دو تا ابداع شد یکی بازم یکیه اما نه نه دو تا میشه تو عالم جلب و عالم اعتبار و تو اعتبار دو تا میشه یک دفعه میاد اونجا رو لحاظ میکنه یک دفعه میاد مسلمان رو لحاظ میکنه این دو تا اینه میشه اصال از سوق المسلم اینم اصل محرزه چرا؟ چون داره میگه تو از مسلمان گرفتی مسلمان تذکیر میکنه. یعنی امام با این ابداع خودشون میان کاری میکنن دست مسلمان رو دخیر میدن در این که ایجاده چی کرده؟ ایجاده به اصطلاح تذکیه کرده پس در اون صورت اول خود حیوان رو گرفت در نظر گرفتن و قبل از زمه در نظر گرفتن و مزکا نبوده قبل از زمه تذکیه بهش واقع شده نبید نگاه کردن ما میگیم تمام اینا اغلاییه اعنیم شاره خود شما در موارد قانونیتون تغییر بگید ریشه قانونی اما در سوق مسلمان که آمد یه گوسنده در نظر نگرفتن. عملاً یک امر خارج از بوسن در نظر میشد اون ید مسلمان. انطور <تصفيق> شد هم داشتن. اصلا دو تا به قول شما اینجا آمده امام یک چیز خارجی رو خوب دقت بگو پس معلوم شد گاهی چیزی در اعتبار در مقام ابدا خودش رو ببینید. گاهی میشه یه چیز خارجی بیاد این رو در زید نوع خارجی ببینیم خوب درکت بکنیم این شد اسمش اقوالت ید المقود سوق المصدف سورت ثبوت ممکنه هست امام هیچ کدومه در نظر نگیرن این هم امکان داره. میگه آغوش بردم خونه امام میخوان بخور بخورش مصدف اسمی نمودش این اصل غیر تنزیلی چون این تصرف نکرد نبرمود این مزدکات این همون نقطه است. داری که در طول تاریخ فقه اسلامی مشکل ایجاد می کند این بود که اگر امام گفت بخور یعنی مذکار این از برکاتی این اصول متخیر شیعه مرموشه گفت نه بخور خیلی از اون ید مسلمه سؤال نقطه از اگر امام فرمود بخور خب اصول مذکاری بخوره میگن نه این مصفت میشه این لازمش نیست این اصل، طبیعت این اصل نتیجه ای که به شما جواز اصله پس اون اصل، دقت کردیم؟ این اصول رو آمدن، علمای اصول اصول این ترقیه که من ارزم چون کلماتی شیخم نباشه اما انصافت ریشه های این ترقیه از زمان شیخ شروع شد ببین شما یک اصل، یک مطلب واحد رو سه جور ممکن است لحاظ بکنن جور های دیگر ممکن است لحاظ بکنن نگه این بوده که لحاظ آلم اعتبار یک آلم واسه دیه. در یک لحاظ نتیجه شده که این حیوان مزکا نیست در یک اعتبار نتیجه اینه که این حیوان مذکر هست در یک اعتبار میگه وخورد که دیگه هست نیست این دیگه صحبت دیمی کنه لحاظ نیست بنا لحاظ چون اما هیچ کدوم از حالت صادق نگاه نکرد فقط سئله من نگاه کرده لحاظ فعله منتر اوز انجام بودم اصوری نهر سنویت میگن تا با انجام برای این از ابداعات ماستی شیعه یعنی از تحریقات اخیر شیعه که نه آقا بخور, از بخور از این رضی مذکا نه خیلیم هم بخور این رضی این انهار اصور یه توضیح خدمت از اونه هر که مبارد زیاده مثلا ببینید شما در استثاب چه کار میگنید در استصحاب اون صورتی از ذهن کیش شما بود میخوام ایمان میخوام بگم اینا چیزی نیست تعبادات شرعی ریشه های عقلایی داره اون وقتی که شما اون صورت ذهنی رو میه حد لا تن بوذ یقین به شک اگر باز بر... شما معتزل لا تن بوذ یقین میشک ناظر به, به مشهور معنی دیگه ای داره حالا وارد این بحث میخوان بشن استصحاب رو قبول دارن دا که چیزی اوقلایی نه به روایت خاصه و لذا استصحاب شما خیلی محدود میشه این توسعه یک جهاد هست نمیشه به هر حد دقت بفرمایید در اینجا اون صورت ذهنی همین شما کاری کردیم صورت ذهنی خب قاعده تجاوز چیه شما در سعیزه شک میکنید رکوع رو انجام دادیم یا نه امام میتوانید بلا قدره کرد این تحریدش چیفه چه تصرفی امام کردید؟ دقیق شاره چه تصرفی بگرد؟ شما رکوع رو شک دارید چطور امام میگه بلا قدره کرد؟ از الان نقطهش به این توضیح که من دادم روشن شد. اصولاً در اصول چه تنزیری چقدر تنزیری دو جهت هست. یکی خود اون مطلب رو لحاظ میکنه دقت بکنید. یکی میاد با مجموعه لحاظ میکنه. این روشن شد؟ ما به شما الان عرض کردیم یه دفعه خود حیوانه در نظر میگیره و قبل از اینکه که کشته بشه میاد بگه عرض عدم مثل کی یه دفعه این حیوان را از دست این از دست مسلمان نه از دست کافر نه این حیوان رو بیابون اگر حیوان رو تو بیابون دیدی باید استفاده از سطح جلوشی همین گوش این گوش از دست قصاب مسلمان گرفتی میاد زنیم میکنه گوش به زمینه دست مسلمان ابداع میکنه مزکا بودن. بودن در باب بین در باب بقای بودن در اگر این کار شده. این قاید تجاوش میگه شما خود کی میدین در نمازی لذا شک شکرد تو نماز هست یا نه قاید نمیشه <تصفيق> تو میدونی در نمازی یک میدونی در نماز مثلا اجزاء مرتب هم پشتر هم باز بیان دو سه میدونی که تو قواهت انجام دادی خب دقیق کنید از اون طرف هم سجود رو انجام دادید سواره ذهنیتون رو جمع بکنید با هم؟ این رکوب جاش کجاست مابلن قراعت و مابلن سجوده رکوب جاش اینجاست میگه؟ جاش مابلن و سجوده نماز هم که هستی؟ ترتیب هم که شرط هست از این مجموعه تولید میکنه برای شما بلا را کرد یعنی اون مجموعه م... تا در اصول در اصول شما همیشه این کلی راه نقیزی چون در کلمات شاول مسلمین کلا نه این راه بسیار توضیح واضحه که در اصول راهی که قرار داده میشه چجوریه و رضا اگر نظر به گوش کرد یک جوره نظر به گوش بلاحال یک عنصر خارجی کرد یک جوره این موارد کلی رو در باب اصول در نظر بگیرید که ما وقتی جهل میکنیم چطور این جهل درست میشه حالا اگر این مطالب اجمالا روشن جور که سابق هم گفتیم بیاین دو ما نحوی جناب قاضی با اون آقا درواش نشون آقا میگه رشته دادن به ایشون ماشین رو قاضی میگه نه با هدیه صحیحه داده خب در لحاظ این که ما اماره ای ندیم الان در بانک خب نمیشه این که جای خودش این که بحث که راهی ما میمونه ما با اون اصولی که داریم با اصول اوغلاوی آیا با اون اصول و میتونیم یک طرف دعوار حل بکنیم؟ اون اصول ما اینه. مثلا فرسون امروز آمده پیش قاضی. روز مثلا فرسون چهار شب به نفتیه روز باسم. میگیم مثلا در روز سه این ماشین در اختیار خود این طرف بود. هیچی هم بود. نه رشوه بود نه حیوه بود. این که ما میتونیم توی دیگه. با اون عدم رو ادامه میدیم. استحاب میکنیم. میگهیم نه بود احس ادم رشته است، نه هدیه بود احس ادم هدیه این حضرت اینه اما آیا این دو تا احس میتونن برای ما تقییه کار نه نمیتونن، فیناسته نمیتونن چون دو تا با هم معارض هست تا میکنه و اصولا این دو تا با علم ما به که این یکیش شد جاری نمیشن؟ پس ما نمیتونیم با حالت سابقه نگاه بکنیم. اصل و عدم کو و آرشوه، عدم کو و نهارره این دو تا اصل برای ما نیستن در اصول جدید ما آمدن یک دسته‌بندی و یک ترتیب طبیعی ما بین اصول و امارات و بر اسول برزار علاق قرار دادن ترتیب بعضیش این طوریه، میگن اگر از راه خودشون نتونست این وارد بشیم برگردیم به اوامل خارجی مثل اونجا که دست, دست مثلا مسلمان وارد شد برگردید به اوامل خارجی اگر اوامل خارجی که به, به ظهور طبیعی اون اوامل خارجی اگر آمدن مورد رو منفع میکنن دیگه مشکلی ما ایما به اصل نداریم اون اوامل خارجی در ما چیه؟ دو قوم در اینجا هست و دو احتمال یک یک عامل خارجی قاعده علالیت باشه چون قاعده هست ما حتی تو از پس ما اینجا که الان اعصده ها به هم برخورد کرد و گیر کردیم با یک اونس این در ظلم قاعده ببینیم این دیدن نیست به قاعده مراجعه کنیم این اصل نیست لحاظ نیست ما به برکت قاعده یعنی این رو به اصطلاح حل بکنیم به برکت قاعده اثبات زمان میکنی. پس اثبات زمان با کی موافق میشه؟ با این شخص نبا قاضی یعنی موافق میشه که اصل و و اون اصل دیگه به خاطر زمان از بین میره پس یک اصل میمونه اینجا آمدیم تا رو و مشکل رو با یک قاعده بالایی برداشیم مثل قاعده سوق مسلم گفتیم در اینجا خوب بیرود و فیروز قاعده زمان روشن شد نقطه چیه؟ ما اثبات میکنیم که حق با این آغاز وقت اون نقطه رو اون نقطه همی که بیرود و فیروز روز کردیم میگه شما اثبات چی میکنید با برکت قاعده زمان که این قاضی زامنه اگر ماشین خراب شده از به این رفته شده بده اما شما نمیتونیم به برکت قاعده زمان اثبات میکنیم قاضی رشوه خورده پس خاسقه پس منفصله از غذاب بشه؟ <laughs> یعنی چرا؟ چون شما نیامدیم با این قاعده عدلیت با غرکت اصالات عدم خونه ها صحیحه بسن به توانید اون عنوان رشده رو به حد ادراک ابدایی تون اثبات بکنید زمانت رو میتونی اثبات بکنید اما عنوان رشده رو نه این یک طرف قضیه یک طرف قضیه میگه نه این قاعده زمان جایی نمیشه چرا؟ پس اون شبهه مصداقی مخصصه چون قاعده زمان و اگه قبول داشته باشید؟ در جایی که تسریف مجانی باشه دیگه زمان نیست اینجا شبهه این تسریف مجانی صحیح باشه پس رجوع به قاعده زمان نمیشه پس دو تا اصبات با هم مشکل پیدا کنیم یا حتی اگر رجوع به قاعده زمان بکنیم ما یکی اصلی داریم که باز در اینها بر تمام این سفر اصل مقدمه بر قاعده زمان مقدمه اون قاعده قاعده اصالت و صحبی شعر المسلمه دیدی ما آمدید به برکت یک امر خارجی مورد نظار رو که تنازوه اصل بود با همزگیم خیلی حد شد کنید به برکت اصالت و صحه. اونم اصل اونم اصل و اقلایی به برکت اصالت و صحه. آمدید این اختلاف رو با یک زمینه خارجی مثل مقادم تجاوزی بختم این سه تا اصل اصالت اردم و کنه های نکاره اصالت اردم و اصالت زمان تمام اینها گفتیم محکوم است به اصالت صحیح بیفیل و غیب اگر اصالت صحیح بیفیل و غیب جاری شد به اگر اصالت صحیح بیفیل و غیب جاری شد حکم میکنیم که این حبه ی خیلیت و حق با قاضیه اینجایی نمه خالجی مرجم به پرزین رو زابیه دید ما ما در زاویه اصافت سه یعنی ما وقتی که ادعای دو طرف رو میبینیم خودمون صورت ذهنی نداره بنا این دو ادعاها رو با اساس سه زنگی می در ادراک ما این که این هده سنگیه باشه واقع هم نیستا اشتغال نشو ما به واقع نرسیدیم این جعل و ادعای در مورد شکیه یعنی این برای ما یک صورت ذهنی درست میکنه که هبه صحیح باشه چرا؟ چون اساس و داره. حالا اگر آمدیم اساس و صحیح داریش تشکیل کردیم که من توضیح هرز کردم اصالت و به معنای این که فعل مکلب صحیح این روایت نداره اساس و صحیحی که ما روایت مکلف مکلب حرام انجام نداره این قاضی حرام انجام نداره اما اینکه هبه سعیه واقع شده اصابت و می اثبات نیست اغلایی هم معلوم نیست باشه نهایتش که قاضی ارتکاب حرام نکرده مرتکب عمل محرم اینکه ارشویت بشده حرامه این مرتکب حرامی نشده قایتش اینه اینجا قرد میکنی؟ از اینکه ارتکاب حرام نکرده اثبات نمی که این هبه سعیه واقع شده این صورت ذهنی ها دقت لذا به شما هستیم در باب وسود همیشه اون داده های ذهنیتون اول ببینید ببینه از اون داده های ذهنی این مطلوب در میداررم. این داده های ذهننیتون رو گرفتین آیا از این در میادهبه صنیه میگه نه از این در میق قاضی ارتکاب حرام نکرده. حبه سگه چیزی کرد این یه تححلیل است که من قتون ار میکنم چرا در اینجا مطرح میکن؟ که در کل اصول همیشه این داشته باشه ما معتقدیم تحلیل اصول تحلیل اوغلاییه شارع اینا تصرفات میکنه نه اصل تحلیل اوغلاییه برای شما خیلی روشن شد تحلیل ما خب اگه اساس سهم سه جاری نشد اون قاعده زمان هم که مشکل فقهی اگر جاری میشه با این اساسه مقدم بود باز اون دو تا اصل زنده شدن باز دعوا شروع شد نه با قاعده زمان تونستی مشکل رو حل بکنیم نه با اساس سه در اینجا اینا معترضا میرسه به باب تضایی. در باب تضایی چون نمیشه دو تا بیانه متعارض باشه. اگر یکی اقامه بیانیه کرد، مطلب پیش میاد به هر دو قسم بخورن، مالها به جای خودش برگرده. باب تضایی یه هر دو قسم میکنن یکی. این ظاهرش به باب تضاییه. این چند تا احتمال؟ سه تا احتمال. یه راهی که من سابقا پیشنها داشتیم دادم چند باره. اما انصافا در مقام تطبیق خیلی مشکل عمل کردن و اون این که ما به جایی که دنبال اقوال داریم خوب دفت بکنیم یه منهج علمی تیمید واقعا در علوم حتی در علوم بشری خیلی ما به جایی که دنبال اقوال داریم مثلا چند تا مسئله هست خود مسئله رو فی تصور بکنین خود مسئله رو کار به اقوال نداشته بگیم طبیعت این مسئله اینجوری میشه ممکن اینکه اینجا بده ممکن که ای اینجا بده ممکن این بحث رو, رو خود طبیعت مسئله بیاری اون زوایایی که دقیقاً چه چیزی رو اون زوایایی که خود مسئله داره الان اینجا اوشه که این مسئله دو تا اصل متعارض با هم داره اون چه که ممکن است حل این تضاد رو بکنه از سالات زمان به نفع یکی ازش از و به نفع یکی حالا اگه دقت کردیم لذا طبیعتا شما وقتی این تحلیل کردی تا میبینیم آقای خوی از این راه بارش شدن یا ایک آقای از این راه میفهمید این آقا از این قاعد استفاده کرد این کلی مسئله روز واضح میشه برای تا نمیخواد دیگه بگین قال فلان وحتجلان متعارف اینه فلانه اینجور گفت دقیق دشین دلیل نمیخواد بیارین خود مسئله میگه دلیل چیه یه دلی این راه را اگر ما بتوانیم در مساحت و در مسائل مثل اقایز و توحید ها محرح بکنیم یک راهی که سیار لطیبیست به نظر ما و نتیجه خوبتری در قدوم میده اما انصافت کار مشکلی خود ما هم گاغایی تصویح میکنیم انصافت راه مشکلی جفت کنیم حالا کار به اقوال نداریم پس ما سه احتمال رو خودمون اصلا در مسئله تصویح کردیم عملت هم هست مثلا مرمون شیخ ظاه اول کوئی اساس زمان برگشت کرده اما نتیجتاً با اساس زمان به صورت منهای توایص رو به اساس زمان بازگشت راه چهارم یک راه هم که طلایی بود که یه روز عرض کردیم راه چهارم ببین چون این اصول این هم از ابداات برمی‌شه یعنی قبل از شیخ هم بود دیگه خیلی واضح کرده قبل از شیخ حتی شما که یه لمع می‌بینید فرعیده که اگر شک می‌کنید مثلا آب این چاه آب بالو ای که آب ایا برخوردیانش نزدیک همه شون یه اصلات عدم لقاء التقاء به ما نجس به آب بالوه و بقا اساس طهاره و اساس بقا طهاره است اساس خب معلوم از ابداش شیخ اینه که شما که گفتید اصل از عدم از ملاقاتی این با آب نجسه خود این کافیه دیگه شلون چه اساس طهاره جری کنیم خود اصول رو با هم موافق باشه بعضی ها رسطتاً برای بعضی از اصول مقدمه یه کیا شده این شما چرا کنه؟ شما چرا هم ها میگه این با آب نجس ملاقات نکرد کافی شما شک میکنی ملاقات کرده نه؟ از عدم ملاقات دیگه نگو از بقایت سهاره نمیخواه از بقایت سهاره؟ به که برجی اینجا مقصد کردن چون قاعده زمان جاری نمیشه از سالت سه هم دو تا اصول با همدیگه تاروخ و هر دو هم موضوعی هم اینجا قبل از این که ما به باب تدایی برسید میتونیم مشکل رو هر بکنیم با رجوع با اصول حکمی یعنی ما با اصول نمیتونیم الان معین بکنیم که این هده یا اج... رشبر اینو با اصول نیست. صورت ذهنی ما درست نمیشه با اصول این مرحله رو دست برداریم بریم تو مرحله عمل و اصول اونجا درست بکنیم اگر رسیم تو مرحله عمل نتیجه شید میشه یک اگر این مال موجوده بگیم چون سابقه این مال اون مدعی بوده مال داتقه بوده الان هم شک میکنیم منتقل شده به غازی یا نه استثاغ بر برمین که مالک از برد ولذا حتی اگر قاضی رحمش هم بود چون قاضی یه حدیه صحیح حدیه به مثلا لازمه حتی تا اگر حدیه صحیح هم باشه، میتونیم از قاضی میتونیم بگیریم دوم، دو. اگر طلب شده، دیگه چون قاضی زمان که مراجعه نکنیم، بر به بقول آین تحقیق یا اصول، ها که آخرین اصلی داریم اساس داره است. در تهدی و اصول آخر و اصول دیگه اون بقول معروف که منظور تهدیدیه به وای اساس داره. چک میکنیم که ایشون باید مثلا قیمت ماشین رو بده اساس داره اجباری یعنی وقتی اصول موضوعی نه امید. یا مردی نه از کار گشایی بکنه برگردیم به اصول درجه دردی یا اصول حکمی یا مثل اساس البراه که آخر اصول دیگه آخری درجه اصول اساس البراه ما دیبر اساس البراه نداریم جایی آخرین اصول ما اساس البراه و اساس احتیاطه پس بنابرایی رو چیز این کار بکنیم بگیم در اینجا برای دو تا هست نتیجش مختلفه از استثاب بقا مک لکن این استثاب اصفاد زمان نمی‌باده اگر این موجوده ماشین هست بر اگر ماشین نیست نبییم یه استثاب بقا می‌دیم اثارت رو برای بده زدمه هست آن مدیون هست باید مک یا قیمت رو بده اصل برمد. باره این مطلبی است که مرجومی ایروانی پس اخبار مسئله روشن شد احتمالات مساله بینا روشن شد اخبار روشن شد یه کسانی که زمان رو میبینن پس حق رو به طرف داو میدون دو کسانی که اساس و سحر میبینن پس سحر رو به طرف قاضی میبینن سه کسانی که این دو تا جاری میشه اصول رو متعارض میبینن میگن برمیگریم به تداری چهار کسانی که مثل من روانی، اصول رو متعارض میزونه از که به تداری برده میگه برمیگریم به اصول و حکیم اون میتونه نتیجه حل بکنم نتیجه شید میشه استثار بقای مهد میشه اگر موجوده بده اگر موجود نیست اساس برای اجال میشه روشن شد چهار قول در مسئله این کیفی دو سه نسی چون وقت همام شده صحبت میکنی و <تصفيق>